من مکرر گفتم ملت ما باید به جایی برسد که دانش پژوهان عالم برای اینکه به قله های علم دست پیدا کنن مجبور باشن زبان فارسی یاد بگیرن این یک جایگاه تعریف شده است ما ممکنه پنجاه سال دیگه به اینجا برسیم باشه اگر بخواهیم به این جایگاه تعریف شده دست پیدا بکنیم راهش اینه که از دانش از هوش از قدرت تحرک بالا از قدرت افتکار و از عزم راسخ در همه بخش ها استفاده کنیم و بهره بگیریم باید اقتصاد رو آورد بالا و بالا آمدن اقتصاد بدون رشد فرهنگی نه مفید فرهنگ هم بایستی تعالی پیدا کنه ترقی پیدا کنه بنابراین شعار امسال شعار زندگی ماست شعار همیشگی ماست این رو انسان خوشبختانه امروز در بخش های مختلفی از جامعه فعال اقتصادی و صنعتی کشور مشاهده میکنه از جمله در مجموعه مپنا من البته گزارش هایی داشتم امروز از نزدیک برخی از اونچه که در این گزارش ها خونده بودیم دیده بودیم از نزدیک مشاهده کردم این نشان میده که شعار مطرح شده به وسیله امام بزرگوار ما یعنی شعار ما میتوانیم این شعار شعار است این صرفا شعار لفظی نیست حقیقتا اینجوره <تصحب> کارهایی که برای کشور ما یک روز از نظر برخی از خواص و مدیران ما دست نیافتنی بود این کارها امروز داره به آسانی با روانی داره انجام میگیره در این مجموعه شما